این ذهبی در نامه‌ای که به ابن تیمیه نوشت نوشت ابن تیمیه چه فسادی ایجاد کردی چقدر مردم رو منحرف کردی و خطری که تو در عصق ما برای انحراف جوانان مسلمان ایجاد کردی از خطر حجاج در زمان خودش کمتر نیست این نامه رو حافظ ذهبی محدث و مورخ معروف اهل سنت به ابن تیمیه نوشته ابن جحیل متوفای 733 فقط یک کتاب در رد ابن تیمیه راجب این مطلب نوشته که ابن تیمیه میگوید خدا جهت دارد خدا مکان دارد خدا در یک جا نشسته خدا حرکت میکند فقط راجه به این مسائل ابن جهیل یک کتاب در رد این ابن تیمیه نوشته است خب ابن تیمیه یک نمونه از تفکرش من از منابع نوشته خودش برایتون بخونم که چرا در زمان خودش علما بر علیه او برخواستن؟ و این اینایی که من خوندم یه گوشه ها خسته کننده میشه وگرنه مفصل از علمای اهل سنت از قرن هفتم هجری تا به امروز حتی قرن چهاردهم هم ردیه بر ابن تیمیه می نویسن از اهل سنت شیعه که حسابش جداست نمونه تفکرشو دو سه تا عرض می کنم جلد اول منهاج سنت صفحه دویست و سی و چهار یکی از بزرگترین غویترین کتاب ابن تیمیه است که بسیاری از پیروان مکتب او هنوز سنگ این کتاب رو به سینه میزنند. میگوید احمد حنبل گفته است که وحدانیت خدا شبیه وحدت درخت خرماست درخت خرما با داشتن ساقه پوست برگ تنه و شاخه باز یه درخت خرماست این درخت با همه اون اجزا یکیست اگر اشائره صفات خدا را از ذات خدا جدا گفتند و شیعه اعتراض کرده است که این لازمش ترکیب برای خداست ما میگوییم همون جور که یه درخت خرما اجزاء مختلف دارد ولی است خدا هم اجزاء متعدد دارد ولی یکیست اون وقت این ابن تیمیه رو با این تفکر در قرن حاضر میخواهند به عنوان شیخ اسلام به من و شما بدن اول بیدار بشیم این چه فکریه یعنی برای یک شاگرد ابد مکتب دینی این تفکر تفکر مسخره است آقا ابن تیمیه متفکر بوده است این نتونسته بفهمه اگر درخت خورما مرکب از اجزای متعدد است یک واحد است وحدت حقی حقیقی ندارد این وحدت اعتباریست مرکب از اجزاست المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزای یک مرکب اگر از اجزاء حقیقیه تشکیل شده باشد یک جز اشراس خودش رفته پس خدا مگه مرکب گرفتید این مقدار این آقا نمیفهمه، اینو میخوان متفکر به ما بدن در کتاب العقیدت الحماوییت الكبرا جلد اول صفحه 451 و 452 ببینید عقیده آقای ابن تیمیه راجب خدا چیست که پیروان او امروز در عربستان به من و شما میگن قبور ائمه رو زیارت کنید مشرکید ما موحدیم توحید ابن تیمیه ای رو میخوایم به خورد شما بدیم ببینید چی میگه این کتاب نوشته خودش دارم میخونم جلد یک صفحه 451 و 452 هیچ یک از سلف نگفته خدا در آسمان نیست و در همه جا هست و نسبت همه مکان ها به او یکیست و او قابل اشاره حسی نیست ما هم میگوییم خدا در آسمان هست در همه جا نیست همه مکان ها به او یکسان نیست قابل اشاره حسی است خدایی که میشناسه یعنی شما اگر اندکی دقت روی این بحث داشته باشید در آسمان هست در جای دیگه نیست قابل اشاره حسیه است. میتونید بگید اونجاستا یعنی اگر بنده الان بگم این لیوان قابل اشاره حسیه است اینجاست پس اونجا نیست اونجا هست پس اینجا نیست خدام یعنی میخواد یک قدرت یک سیتره بر کل هستی که داره نظاره میکنه میخواد پایه رو بزنه اما از کجا شروع کردن این تفکر خدا رو مطرح کردن دیدن جامعه آمادگی نداره برکشتن از امامت شروع کردن امامت رو بکوبن پایه شناسایی اسلام صحیح رو از میان ببرن بعد برگردن خدایی که میخوان به خورد شما بدن و پیغمبری که به خورد شما ابن تیمیه در یک جلسه سخنرانی که معاصرین او معترض شدند و بر ردش کتاب نوشتند عصا دستش بود گفت پیغمبری که از دنیا رفته هیچ کاری از او ساخته نیست این عصای من الان نفعش برای من از پیغمبر اسلام بیشتره چون میتونم به او تکیه بدم ولی پیغمبری که از دنیا رفته که دیگه کاری برای من نمیتونه بکنه این حرف ابن است الان تو برخی مقالاتی که تو مجلات ما نوشته میشود به شما نشون میدم به عنوان اسلام شناسی این تفکر رو به خورده جوانای ما میدن که 700 سال قبل علما ی اهل سنت شوریدان بر این حرف گفتن آقا راجب شهید قران میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتها بل احیاء ان درب بهم یرزقون پیغمبر از یک شهید کمتری که میگه تموم شو این ارزش ها رو میخواد بکوبه میخواد پل بزنه